خدا دکتر خدا هستم دکترای تخصصی سلامت باروری و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در مجموع پادکست های آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک در خدمت شما بازوی واران هستم در این اپیزود میخوام در رابطه با اهمیت آموزش در دوران بارداری صحبت کنم آموزش های دوران بارداری امر ضروری برای سلامت مادر و خانواده هستند که طی مراحل مختلف و با استفاده از روش های ویژه انجام میشه بنیان گذار های آموزش های دوران بارداری یعنی دیکلید، لاماز و بارلی برای اولین بار به طور کاملا عملی این آموزش ها را آغاز کردند و در طول زمان هم ماماها و متخصصان زیادی روش‌های جدیدتری را رو بر مبنای تحقیقات و مستندات علمی در این زمینه به کار گرفتند. محتواهای آموزشی کلاس‌های دوران بارداری به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز مادران و بر مبنای یافته‌های جدید علمی طراحی می‌شود. به این ترتیب که کلاس آموزشی دوران بارداری مکانهای منحصر به فردی هستند که در اونها انتظارات، باورها و آگاهیهای والدین با تجربه و علم مربیان مبادله میشه و در نهایت آموزش لازم در مورد بارداری و زایمان به مادر و خانواده او داده میشه. آموزش های دوران بارداری، دارای نتایج کوتاه مدت و بلند مدت هستند. نتایج کوتاه مدتی ماننده ایجاد احساس شادی، خوشحالی و سرزندگی در والدین و همچنین در خانواده و افسایش توانایی روی رویارویی با شرایط جدید رو ایجاد میکنه. علاوه بر این این آموزش ها در دوران بارداری توانایی مقابله با مشکلات احتمالی را در والدین و خانواده افسایش میده و در نتیجه منجر به افسایش سلامت مادر و نوزاد خواهد شد آموزش های دوران بارداری در بلندمدت منجر به افزایش اعتماد به نفس در والدین به ویژه مادر و افزایش رضایتمندی اونها از بچه دار شدن میشه همچنین این آموزش ها در دراز مدت منجر به مشارکت فعال اعضای خانواده در حفظ و بهبود سلامتشون و همچنین ارتقاء توانمندی اونها برای سازگاری و رورارویی با مشکلات و پذیرش مسئولیت زندگی رو به همراه خواهد داشت. آموزش های دوران بارداری بسیار گسترده هستند به طوری که از قبل از لقاه شروع میشن و تا بارداری و زایمان رو پس از اون هم ادامه دارند. و نه تنها مادر بلکه پدر و سایر اعضای خانواده رو هم درگیر میکنند حالا من چند سال از شما بزرگواران دارم باور و عقیده شما در رابطه با زایمان طبیعی چیه آیا به نظرتون زایمان طبیعی یک روند طبیعیه یا یک واقعی پرخطر که زندگی مادر رو تهدید میکنه و برای نجات جان مادر باید مداخلات طبی زیادی انجام بشه و سوال دیگرم از شما بزرگواران این هست که چگونه میتونیم بین استفاده از تکنولوژی و واقعیت قدرت خدادادی مادر برای زایمان تعادل برقرار کنیم و در آخر اینکه چه کسی مسئولیت هدایت روند زایمان رو بر عهده داره پزشک یا ماما یا پدر و مادر و یا هردوی اونها در کنار هم پاسخ به این سوالها زیربنای ساختار آموزشی دوران بارداری رو تشکیل میدن و پاسخ به تک تک این سوالها محتواهای های دوران بارداری هستند. آموزش های دوران بارداری منجر به این میشند که والدین به ویژه مادر دستهاشون رو در دستهای ارائه دهندگان خدمات درمانی اعم است پزشک و ماما بذارند و با آموزش مواردی مانند ریلکسیشن یا همون تنارامی، تکنیک های تنفسی، و سایر آموزش‌ها مهارت‌های لازم را برای اداره درد زایمان و های دوران بارداری و زایمان کسب بکنند و آسایش بیشتری را در دوران بارداری و زایمان تجربه بکنن. آموزش آموزش‌های دوران بارداری منجر به جلب اعتماد در والدین به ویژه مادر. و همچنین جلب اعتماد ارائه دهندگان خدمات تهرمانی میشه. این آموزش ها فرصت طلایی هستند که میتونن مادر رو به سمت توانایی سوق بدن و کمک بکنن تا مادر بر خودش تسلط پیدا بکنه و با به گرفتن روش های ارزشمند بتونه بارداری ایمنی رو سپری بکنه و در نهایت هم زایمان راحت و سالمی رو داشته باشه شرط اصلی موفقیت در این مهم داشتن علم مهارت و اعتقاد قلبی است